روایات بنی اسرائیل روایاتی هستند که بنی اسرائیلی که بعضی از کتاب های بنی اسرائیل اونها را نقل می کنند از کتاب های بنی اسرائیلی ها می اسرائیل کنند کنن. در مورد این روایات آیا اینها ضعیفند یا قویند اینها دو صورتند اول این است که غایی قولی نقل میشه، نبی مکرم اسلام صلی علیه و وسلم از گذشتگان خبر میده. این سند داشته باشه قولش درستی. گاهی یه قول از کتاب های بزرشتگان از خورات و انجیره مثلا تحریف شده نقل میکنم در این مورد چی کار کنیم؟ داخل صحیح بخاری کتاب و تفسیر آیی داریم حدیث اون آیت تفسیر همون آیه حدیث داری که راوی حضرت ابو هریره هست کنری مکرم اسلام پرمودند که وقتی که از بنی اسرائیلی ها اونا چیزی نقل کردن کتاب خودشان طلعت تصدیقوه و لا تکذيبوه نان تصدیق بکنید نان هارو تکذیب بکنید نکه کہ بگویید راست میگی نہ کہ دروغ میگی چون اگر راست گفت اگر بگیسمت دروغ بگید شاید راست گفته باشند و نقل کلام از ثوراء باشه کلام الهی هست گناهکار میشی و نگوید که راست میگیید شاید نه دروغ گفته باشند اون چیزی کلام الله نباشی و الله من سودا بی میشی بازان گناه هست پس سکوت کنید ذوات بن اسرائیل به این